ساغر فنمم اعصابم دادی سلام با اینکه مدت کمیه که افتخار همکاری با شما رو داریم ولی ادب و متانت و شخصیت شما به شدت برای بنده قابل احترام امیدوارم که به درجات بالایی توی فروش برسی و بتونیم کنار هم دیگه هدف ها و تارگت های خوبی رو تاچ بکنیم مسیر مسیر سختیه اما امیدوارم که با تلاش بیشتر با زحمت بیشتر خودتو به بقیه بچه‌ها برسونی و یکی از و midst همه بچه‌ها یکی از افتخارات نووینالماس و شاگردان پرورشی یافته نووینالماس باشی برات آرزو موفقیت دارم و بابت همین مدت زمان کم همکاری هم ازت تشکر می‌کنم